به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم بیا بگو که ز عشقت چی ترد بربستم اگر چه من و عمرم قمت و داد به باد به خاک پای عزیزت که اه نشکستم چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق در هوای رو چون به مهر پیوستم بیار باده که عمریست تا من از سر عمد به کنج آفیت از بحره ایش ننشستم اگر زی مردم خوشیاری ای نصیحت گو سخن به خاک ما یفکن چرا که من مستم چگونه سرز خجالت براورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم به سوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم